سلام به شنوندگان خوب افسانه های صوتی از سری داستانهای کتاب سیندرلا و کفش شیشهای و چهل افسانه دیگر با یه داستان دیگه در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدن داستانمون لذت ببرید اسم داستانمون هست کتوله زرد رنگ یکی بود یکی نبود تو سرزمینی ملکه زندگی میکرد که چند تا بچه داشت. اما از بین بچه هاش بود که ملکه بیشتر از همه اونو دوست داشت. ملکه بعد از فوتشا تمام هوش و حواظش رو به این دختر داده بود و مدام مراقب بود که مواد آسیبی بهش برسه. اونقدر که دختر خیلی لوس شده بود و دیگه به فکر برطرف کردنه عیب ها و ایراداش نبود. نتیجه این کار را این شده بود که شاهزاد خانم که البته خیلی هم زیبا بود وقتی تاج رو سرش گذاشت بعد خودخواه و عاشق زیبایی شده بود که همه عالم رو تحلیل می کرد. ملکه با تعریفهایی که از اون می کرد باعث شده بود که دخترش هیچ کسی رو لایق خودش ندونه. او معمولا لباس های شبیه لباس پریا می پوشید، به شکار میرفت و چند زن که اونها هم لباس های زیبایی داشتند اونو تو این کار همراهی میکردند. ملکه نقاشهایی رو خبر کردش تا از صورت دخترش نقاشی کنند و بعد تصویر صورتش رو برای تمام پادشاه همسایه فرستاد. وقتی پادشاه ها تصویر شاهزاده خانم رو دیدن همه عاشقش شدن اما این تصویر رو هر کس یه جور تأثیری گذاشته بود یعنی بعضیا از اونها مریض شدن بعضیا دیوونه شده بودن و تعدادی هم که شانسشون از بقیه بهتر بود تونسته بودن تو اولین فرصت خودشون رو به حضور شاهزاده خانم برسونن اما این شاسدهایی بیچاره درست در لحظهی که چشمشون به دختر می افتاد برده اون می شدن هر کاری که بلد بودن میکردند که خودشون رو به بهترین و دلنشین ترین شکل در بیارن و هرچی چی پول خرج کردن تا به نظر دختر زیبا بیان ولی وضعیت طوری بود که زیباترین و خوششانسترین اونها هم وقتی به حضور شاهزاده خانم میرسید اون میگفت قشنگ شدی ملکه از تعریف و تمجیدهایی که از دخترش میشد خیلی خوشحال بود اصلا روزی نمیشد که هفت بر بار و شعر عاشقونه از بهترین شاعرای جهان برای دخترش فرستاده نشه همه شعر درباره شاهزاده خانم بلیسیما سیما بودند وقتی بلی سیما 15 ساله شد همه شاهزاده‌ها آرزو کردند که با اون ازدواج کنند ولی هیچکس کس جورت نداشت که این مسئله رو مطرح کنه اونا حاضر بودند روزی 5 بار خودشون رو فدای اون کنن اما حتی این کارها هم در نظر بلیسیما سیما ارزش و کم اهمیت بود همه اونا فکر میکردن که شاهزاده خانم خیلی سنگدل و ظالمه. ملکه آرزو داشت عروسی دخترش رو ببینه، ولی نمیدونست که چجوری اونو راضی کنه که به شکلی جدی به ازدواج فکر کنه. اون به دخترش گفت: "بلیسیما، من نمیخوام تو اینقدر خودخواه باشی. چرا این های جوان رو تغییر میکنی؟ من آرزو دارم که تو با یکی از اونا ازدواج کنی." ولی تو اصلا به خواسته های من اهمیت نمیدی. ولی سیما جواب داد من همینطوریم هم خیلی خوشحالم مادر راحتم بزارد من نمی خوام به کسی علاق من بشم. ملکه گفت: ولی تو با هر کدوم از اونها که ازدواج کنی خوشبخت میشی. اما اگه روزی ببینم که میخوای با کسی ازدواج کنی که شایستگی تو رو نداره خیلی ازت عصبانی میشم. هم مش هنوز هم با خودش فکر میکرد که اونها جوونهایی به اندازه کافی باهوش و زیبایی نیستن که باهاشون ازدواج کنه. ملکه که واقعا آرزو داشت عروسی دخترش رو ببینه از کارهای خودش که باعث شده بود دخترش اونقدر بشه پشیمون شده بود. ملکه که دیگه نمیدونست باید چی کار کنه تصمیم گرفت با جادوگری به اسم پری صحرا مشورت کنه البته که این کار کار سختی بود چون چه شیر وحشی این جادوگر رو همراهی میکردند. ولی خوشبختانه ملکه می دونست که برای خلاص شدن از دست شیرها باید برای اونها نوعی شیرینی از آرد گندم، آب های شکری و تخم کروکودیل درست کنه و به اونها بده با دستای خودش شیرینی رو درست کرد و تو سبدی گذاشت و برای دیدن پری صحر رو راه افتاد. وقتی کمی راه رفت خسته شد تصمیم گرفت با یه درختی بشینه و کمی استراحت کنه. خیلی زود خوابش برد وقتی از خواب بیدار شد در کمال تعجب دید که سبدش خالیه و هیچ اثری از شیرینی ها نبود. تا به خودش بیاد متوجه نهره شیرهایی شد که در اون طرف بودن و فهمید که شیرها نزدیکن و به دنبال اون اومدن. اون فریاد زد چه کار کنم الان اونها منو میخورن؟ ملکه از ترس خوشکش زده بود و جرعت نمیکرد حتی یه قدم هم برداره. بعد شروع کرد به داد و فریاد و در همون حال به درختی که زیر اون خابیده بود تکیه داد. در همون لحظه شنید که یک نفر میگه هم هم به اطرافش که نگاه کرد هیچ خبری نبود بعد بالای درخت رو نگاه کرد دید مرد لاغرندامی اون بالا نشسته و پرتقال میخوره مرد گفت اوه من نمیدونم که چقدر از این شیرا ترسیدید البته حق دارید چون اونا تا آدم زیادی رو خوردن. شما هم که فرقی با دیگران ندارین. تازه شیرمی هم نداری که بهشون بدید نه؟ ملکه بیچاره گفت من باید آماده مردم بشم. ای وای نباید برا رسیدم به این آرزو که دخترم عروسی کنه. با خودم این کار رو میکردم. مرد قد پوست زردی داشت. به همین دلیل همه اون بطوله زرد صدا میکردن اون روی درخت پرتغال زندگی میکرد مرد فریاد زد آه شما یه دختر دارید؟ خیلی از شنیدن این خبر خوشحالم من تمام دنیا رو برای پیدا کردن یه همسر خوب گشتم حالا اگه به من قول بدید که دخترتون با من ازدواج کنه کاری میکنم که دست هیچ کدوم از این شیرها به شما نرسه ملکه نگاهی به صورت اون انداخت صورت رنگش، از نظر ترسناکی دست کمی از شیرا نداشت ولی ملکه دیگه نمیتونه ست و یک کلمه هم حرف بزنه کتوله فریاد زد چی شد؟ شک داری خانم؟ مثل اینکه خیلی دوست داری شیرها رو زنده زنده بخورن همینطور که کتوله داشت حرف میزد ملکه دید که شیرا دارن به سرعت بهش نزدیک میشن هر کدوم از شیرا دو سر، هشت پا و چهار ردیف دندون داشتن و پوستشون مثل لاک لاک پشت محکم و قرمز رنگ بود با دیدن این وحشتناک ملکه بیچاره که مثل گنجیشکی که آقاپا بهش حمله کرده باشن داشت میلرزید با صدای بلندی فریاد زد آهی کوتوله عزیز بلیسیما با تو ازدواج میکنه کوتوله با لحن اهانت آمیز گفت البته بلیسیما خیلی زیباست اما حالا دیگه من نمیخوام باش ازدواج کنم میتونی اونو برای خودت نگهداری ملکه با پریشونی گفت آه پیشنهاد منو رد نکن اون جذاب ترین دختر دنیاست که جواب داد خب چون من آدم خیرخواهی هستم قبول میکنم ولی یادت نره که اون مال منه همینطوری که داشت حرف میزد در کوچکی در تنه درخت پرتقال باز شد و ملکه موفق شد که به موقع خودش رو داخل تنه درخت بندازه و در پشت سرش بسته شد و شیرا اون طرف موندن ملک اونقدر گیج بود که متوجه نشد در اون طرف تنه درخت در دیگری باز شده. اون از اون در بیرون رفت و خودش رو در زمینی پر از خار و گزنه دیدش. حفره های پر از گل و لای اونجا پوشیده شده بود. کمی اون طرفترم یک کلبه کاهگلی دیده می که کتوله زردرنگ با حالتی غرو رامیز از اون بیرون اومد. اون کفش‌های چوبی به پا کرده بود و کت زرد رنگی به تن داشت. و چون سرش مو نداشت و گوشاش دراز بود، قیافش واقعاً عجیب غریب بود. اون به ملکه گفت: "خیلی خوشحالم که شما مادر زن من هستید. حالا بهتره خونه کوچیکی رو که به شما با من در اون زندگی خواهد کرد رو ببینید. با این خارها و ها اون می‌تونه یک میمون رو غذا بده و با اون هر جا که میخواد بره. با این سخف کم ارتفاع گرما و سرمایه هوا اونو اذیت عذیت اون از آب این جویبار و این ها که در اینجا خیلی چاق میشن میخوره و من خیلی هم که خوشتی بخوشگل هستم همیشه کنارش خواهم بود. همیشه مثل سایه به دنبالش هستم و در کنارش میمونم. ملکه غمگین که میدید دخترش در چه شرایطی باید زندگی کنه دیگه تمام حس و حال خودش رو از دست داده بود نه چیزی میشنید و نه حرفی میزد انگاری که بیهوش شده بود وقتی حال ملکه کمی بهتر شد با کمال تعجب خودش رو روی تخت و اتاق خودش دید عجیب‌تر اینکه اون یک کلاه که بند و روبان تزیین شده بود به سر داشت و این قشنگترین کلاهی بود که اون تو عمرش دیده بود او فکر می کرد که همه این اتفاقها شیرای وحشتناک و قولش به کتوله زردنگ برای ازدواج با دخترش فقط یه کابوس بوده و اون کلاه با اون روانهای زیبا، به این بود که یادش بیاد همه چیز حقیقت داشته این مسئله اونقدر ناراحت کننده بود که ملکه از فکر اون نمیتونست نه چیزی بخوره نه چیزی بنوشه و حتی هم بخوابه شخصده خانم که با وجود همه دلسنگیاش مادرش رو خیلی دوست داشت از دیدن اون تو این حالت خیلی ناراحت شد و مدام میپرسید که چه اتفاقی افتاده ولی ملکه که نیمیخواست دخترش حقیقت رو بفهمه گاهی بهش میگفت که مریضه و گاهی هم میگفت که ناراحتیش برای اینه که یکی از همسایه ها اونها رو تهدید به جنگ کرده. ولی سیما خوب میدونست که مادرش چیزی رو داره ازش پنهون میکنه و هیچ کدوم این دلیل ها علت واقعی ناراحتی مادرش نیست. برای همین تصمیم گرفت که با پری صحرا درباره این موضوع مشورت کنه چون شنیده بود که پری صحرا خیلی آقله و همه چیزو میدونه. با خودش گفت اگه پیش اون برم درباره این موضوع که اصلا ازدواج بکنم یا نه هم ازش می برسم. به این ترتیب اون مقدار شیرنی برای شیرها درست کرد و یه شب خیلی زود به اتاقش رفت و وانمود کرد که میخواد بخوابه. اما در اتاق خودش رو با یه پارچه پوشون و از پله مخفی ساختمون پایین رفت و تنها برای پیدا کردن پری صحرا به راه افتاد. وقتی نزدیک اون درخت پرتقال کشنده رسید و دید که اون درخت پر از گل میوه‌ست، ابتدا ایستاد تا کمی پرتقال جمع کنه و تو سبدش بریزه. بعد نشست تا پرتقال‌ها رو پوست بکنه و بخوره. ولی موقع رفتن متوجه شد که اثری از سبدش نیست. و هرچی در اون اطراف دنبال سبدش گشت اونو پیدا نکرد. هرچی بیشتر دنبال ثبت میگشت بیشتر میترسید تا اینکه بالاخره شروع کرد به گریه کردن که یه خوب کتوله زرجن رو جلوه خودش دید. کتوله گفت دختر زیبا چی شده چرا گریه میکنی؟ اون جواب داد وای گریه من ترجمی نداره چون من سبدی رو گم کردم که به من کمک میکرد. تا بتونم به سلامت به کار پری صحرا برم. مرد گفت تو با اون چی کار داری؟ آخه من دوست اونم و به اندازه باهوش هستم. شاید بتونم کمکت کنم. شخصاده جواب داد مدتیه که مادرم به قدر نراحت و که میترسم از این نراحتی بمیره. میترشتم من دلیل ناراحتیش باشم چون اون خیلی دوست داشت که عروسی کنم. ولی من؟ کسی رو شایسته همسرین پیدا نکردم. خلاصه برای همین چیزا میخواستم برم با پری صحرا صحبت کنم. کوتول جواب داد: شاهزاده خانم، دیگه لازم نیست خودت رو بیش از این زحمت بدی. من همه چیز رو بهتر از اون می‌گم. مادرت اون ملکه برای ازدواج تو به کسی قول داده. و دختر حرفش رو قطع کرد و گفت: به کسی قول ازدواج من داده؟ آه نه من مطمئنم اون این کاری نمیکنه وگرنه به من می گفت امکان نداره. اون چیزی رو بدون رضایت من قول بده. تو حتما اشتباه می کنی. به طرف اون رفت و فریاد زد دختر زیبا. من فکر می کنم اگه به شما بگم که اون قول ازدواج شما رو به من داده شما هم خوشحال میشید. بلی سیما عقب عقب رفت و فریاد زد تو؟ مادرم میخواد من با تو عروسی کنم تو باید خیلی احمق باشی که چنین فکری کردی کتوله با عصبانیت فریاد زد باشه منم چندان مشتاق نیستم که با تو ازدواج کنم ولی الان شیرها دارم میان اونا تو رو یه میکنن و میخورن و این میشه آخر تو و خوشبختی در لحظه شاهزاده خانم بیچاره صدای نره شیرها رو میشنید نزدیک و نزدیکتر می شدن فریاد زد من چه کار باید کنم یعنی زندگی خوش من باید اینجوری به پایان برسه کتوله برس از روی بدخواهی بهش نگاه کرد و می و می گفت بلاخره راضی شدی که زباش نکرده بمیری حتما شاهزاده زیبایی مثل شما ترجیم میده بمیره ولی همسر سر کتولهی مثل من نشه دختر دستهاش رو به سرعت تکون داد و گفت از دست من عصبانی نباشت من ترجیح میدم زن همه کتوله های دنیا بشم ولی اینطوری نمیرم کتوله گفت قبل از اینکه این, این حرفها رو بزنی خوب به من نگاه کن نمیخوام با عجله به من قول بدی. شاهزاده فریاد زد اوه شیرا دارم میان من به اندازه کافی به تو نگاه کردم الان خیلی ترسیدم حالا تا از ترس نمردم مرا نجات بده. در همون لحظه شاهزاده بیهوش شد و وقتی به هوش اومد متوجه شد که تو تخت خواب خودشه. اینکه چطوری به اونجا رفته خودشم نمیدونست. اما لباس زیبایی که با روبان‌ها و بن تزیین شده بود به تنش بود و در انگشتشم انگشتر کوچیکی بود. که از یک تار موی قرمز درست شده بود این انگوشتر اونقدر محکم به انگشتش نشسته بود که هر کاری میکرد نمیتونست سنو رو در بیاره وقتی شاهزاده این نشونه ها رو دید یادش اومد که چه اتفاقاتی افتاده و اون هم اونچنون در ناراحتی و غم فرو رفت که همه اطرافیان مخصوصا ملکه رو نگران کرد ملکه بیشتر از 100 بار از بلیسیما پرسید که چه اتفاقی افتاده ولی اون مدام جواب میداد که چیزی نشده. بالاخره سران مملکتی که می‌دیدن شاهزاده به شدت ناراحته از ملکه خواستن که ازش بخواد همسری برای خودش انتخاب کنه. ملکه گفت که دخترش به حرف اون گوش نمیکنه و انگاری اصلا قصد ازدواج نداره. و اگه اونها مایل باشند خودشون باشتون صحبت کنن. به این ترتیب بزرگای مملکت خودشون پیش شاستاده رفتن. شاستاد خانم به خاطر همه ماجره هایی که براش پیش اومده بود دیگه مثل قبل اونقدر خودخواه نبود و با خودش فکر میکرد بهترین راه برای خلاص شدن از دست کتوله زردرنگ اینه که با پادشاه قدرتمندی ازدواج کنه. به همین دلیل به اونها گفت که حاضر با پادشاه معدن‌های طلا ازدواج کنه این پادشاه شاهزادهی خوش‌سیما و قدرتمندی بود که از سالها پیش به شاهزاده خانم علاقمند بود ولی هرگز فکرش هم نمی‌کرد که شاهزاده پیشنهادش رو برای ازدواج قبول کنه پادشاه از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شد و البته پادشه های دیگه هم از اینکه امید ازدواج با شاهزاده خانوم رو برای همیشه از دست می‌دادن خیلی عصبانی شده بودن ولی بعد از همه این مسائل بلیسیما هنوز معتقد بود که انتخاب یک نفر از بین تمام ها و افراد مهم خیلی مشکله چون هیچ کدوم به اندازه کافی شایستگی اون ندارند. خیلی زود مقدمات برگزاری جشن عروسی شاهزاده خانم انجام شد. پادشاه معدن‌های طلا انقدر پول برای اونها فرستاد که کشتی‌های تمام دریا رو پر کردن. خواستگاری به همه دربارها فرستاده شدهش تا اونها تمام امکاناتشون را برای زیبایی آرش آرایش شاهزاده خانم به کار ببرن. اگرچه شخصاد خانم اونقدر زیبا بود که احتیاج به آرایش نداشت، دستکم برای پادشاه که آرزوی به غیر از ازدواج با اون نداشت، اینجوری بود. جوون اونقدر خوش سخاوتمند و باهوش بود که هرچه میگذشت شخصاد خانم بیشتر بهش علاقمن میشد. اونا گاهی با هم به باغ زیبایی میرفتن و به موسیقی گوش میکردن و خیلی بهشون خوش مگذاشت. پادشاه برای بلیسیما شعر میکنند. شعرهایی که بلیسیما خیلی اونها رو دوست داشت. در جنگل همه خوشحالند. وقتی بانوی زیبای من در اینجا قدم میزند. همه شکوفه ها سربر می آورن. و زمین را به لرزه میاندازند و امیدوارند که او برانها قدم نهند و گلهای زیبا با نازکشان به آرامی از میان علفها سربر می وقتی او از اینجا می گذارد آه زیبای من پرندهها سرود عاشق ما را با خود می خانند. وقتی ما دست در دست هم در این زمین افزون شده قدم میزنیم، اونا تمام طول روز خوشحال و شاد بودن. همه ای رقیب که دیگه نامید شده بودند بی سر و صدا شده بودند و همشون با ناراحتی از شاهزاد خانم خداوزی کرده بودن. پادشاه به شاهزاده گفت بانی من فکر خودتون رو به این افراد مشغول نکنید. شما اونقدر ارزش دارید که اونها باید همه ثروتشون رو فقط برای یه لبخند شما بدن. به لیستی ما جواب داد من از این ناراحتم که این شاهزاده ها رو خیلی تاخیر کردم. شما که نمیدونید. البته شما خیلی با اونها فرق دارید. شما تمام خصوصیاتی رو که من دوست دارم دارید. اگه من برای اونها ناراحتم شما نباید ناراحت بشید. پادشاه از اینکه دختر اون رو بهتر از شاهانه دیگه میدونست خیلی خوشحال بود و از اون میخواست که اگه باعث ناراحتی شده اونو ببخشه. بالاخره روز شادی فرا رسید. همه چیز برای عروسی ولی آماده بود. نوازنده ها مینواختند. خیابان‌های شهر با گل و پرچم تزیین شده بودند. و مردم در میدون بزرگ جلوی قشت جمع شده بودند. ملکه اینقدر خوشحال بود که اصلا خواب به چشمش نمیومد و مدام مشغول دستور دادن و یا انتخاب جواهرات و وسایلی بود که دخترش باید در روز عروسی استفاده کنه. این جواهرات هیچ کدوم کمتر از الماس نبودن. حتا کفش شاهزاده خانومم با الماس تزین شده بود لباسش اونقدر نقره کاری بود که مثل خورشید برق میزد و شاهزاده بیشتر از هر چیزی در اون شهر می درخشید. اون یک تاج با شکوه زیبایی بر سر گذاشته بود و موهاش تقریبا تا پایین پاش میرسید و مثل نگینی در میون همه هایی که امرايش می‌کردن می درخشید. پادشا کمتر از اون با و جلال به نظر نمیرسید از چهرش پیدا بود که چقدر خوشحاله و هر کسی که نزده اون می میرفت با باری از هدیه برمی گرشت. دور تا دور تالار پر از هزاران ظرف طلا شده بود و تعداد زیادی کیف مخملی که با دونه های مرباریت شده بود و پر از پول بود، در بوش و کنار دیده میشد داخل هر کدوم از کیفا دست کم ست هزار تیکه طلا بود تا به عنوان هدیه و افراد داده بشه. شادی بزرگی برپا شده بود. ملک و دخترش دیگه آماده بودن که نزد شاه برند که ناگهان متوجه شدن از اون طرف تالار دو نفر به طرف اونا میان که جبهی هم در دستشونه پشت سر اونها پیرزن قد بلندی میومد که چهره خیلی زشتی داشت این پیرزن لباسی با یقه گرد و چیندار از پارچه سیاه به داشت و کلاهی از مخمل قرمز به سر داشت پیرزن کیسه‌ای پر از سکه و یک چوب دستم در دستش داشت پیرزن عجیب غریب بدون اینکه کلمه حرف بزنه با پای لنگان دو سه بار دور تالار راه رفت. را. اون دو نفرم هم همراهیش می‌کردن. بعد در وسط تالار ایستاد و چوب دستیشو در هوا تکون داد و فریاد زد: هو هو ho, ملکه، هو هو شاهزاده خانم. فکر میکنید به راحتی می‌تونید پا روی قولی که به دوست من کوتوله زرد دادید بگذارید؟ من پری صحرا هستم. بدون کتوله زرد و درخت پرتغالش شیرهای من شما رو به زودی خواهند خورد. در سرزمین ما هرگز این بیادبی شما نادیده گرفته نمیشه. زود فکر کنید که چه کار میخواید بکنید. من شرط کردم که تو با کتوله زرد رنگ عروسی کنی وگرنه چوب دستیمو و آتیش میزنم. ملکه گریه کنون گفت آه دارم چه میشنوم؟ آیا تو واقعا چنین قولی دادی؟ بلیسیما با نراحتی گفت آه مادر خودت چه قولی دادی؟ پادشاه معدنهای طلا که از به هم خوردن شادیش توسط این پیرزن سخت ناراحت شده بود تهدیدکنان کنان گفتش فورا از سرزنین من برو بیرون و خودت رو گم و گور کن وگرنه خودم راحتت می کنم تو همین موقع در جعبه با صدای وحشتناکی باز شد و کتوله زرد رنگ سوار بر یک گربه غول پیکر از اون بیرون اومد شاه دیگه به زحمت حرف میزد. زد کتوله که بین شاه و پریه صحرا ایستاده بود فریاد زد جوانک گستاخ چطور جورت می با پریه سهره اینطوری حرف بزنی تو باید با من صحبت کنی چون من دشمن و رقیب تو هستم. این دختر بیوفا که داره باهات عروسی میکنه به من قول ازدواج داده بود. به انگشتش نگاه کن. انگشتری از موهای قرمز من به دستشه. فقط کافی سعی کنی اون انگشتر رو در بیاری. اون وقت میفهمی که من چقدر از تو قدرت منترم. شاک گفت هیولای بدبخت چطور جورت میکنی خودت رو؟ آشق شاهزاد خانم بدونی و چنین گنجینهای رو تصاحب کنی؟ آیا میدونی که یک کتوله زشت هستی که هیچکی تحمل نداره حتی یه لحظه بهت نگاه کنه؟ اصلا اگه من خودم از این مسئله خبر داشتم باید تو رو قبل از این میکشتم تا از این زندگی نکبت بار خلاص بشی؟ کوتوله زد رنگ که از شنیدن این حرف خیلی عصبانی شده بود لگدی به گربش زد گربه جیغ وحشتناکی زد و به این طرف اون طرف پرید و همه رو ترسون به غیر از پادشاه شجا که نزدیک کوتوله ایستاده بود بعد کوتوله شاه رو به مبارزه تن, به تن دعوت کرد اون شاه رو به حیات قصر کشوند و شاه کاملا خشمگین با عجله به دنبالش رفت هنوز اون دو روبروی هم قرار نگرفته بودند و افراد حاضر هنوز برای تماشای اونها روی بالکن نرفته بودند که یهو یه خورشید مثل خون قرمز شد و هوا اونقدر تاریک شد که آدما به سختی همدیگر رو میدیدن. بعد رد و برق زد اونچنو که نزدیک بود همه چیز آتش بگیره دو محافظ پری سهرا به کنار کوتوله بدرنس اومدن و هر دو مثل حیولا بودند و از گوشا و دهنشون آتیش بیرون میومد. انگاری تنورهایی بودن که آتیش اونها به بیرون زبونه میکشید. ولی هیچ کدوم از اینها شاه با اصالت و شجار رو نترسون و شهامت چشما و حرکاتش به دیگران هم دل و جرعت میداد. ویا شاید حتی کوتوله رو هم به وحشت میانداخت ولی وقتی دید که میخوان با شاهزاده خانم چیکار کنن، انگار شجاعت اون هم تحت تاثیر قرار گرفته بود پری صحرا سوار بر موجودی عجیب بود موجودی که نیمی از بدن شیر و نیمی حیوون ای بود و مارهایی به دور گردنش بودند و از قبل خیلی وحشتناکتر به نظر میومد. اون نزدیک رفت و نیشتری به بدن بلیسیما فرو کرد. بلیسیما که خون از بدنش جاری شده بود، بیهوش شد و به آغوش مادرش افتاد. مادرش از دیدن همچین صحنه‌ای حال بهتری از دخترش نداشت و شروع کرد به گریه زاری. شاه با دیدن این وضع همه شجاعت و حضور ذهنش رو از دست داد. بنابراین جنگ رها کرد و به سراغ شهستاد خانم رفت که یا اونو نجات بده و یا خودشم با اون بمیره اما کوتوله از اون زرنگ تر بود چون همراه گربش به سرعت روی بام پرید بلی رو دزدید و قبل از اینکه کسی بتونه حرکتی بکنه از روی پشت بوما فرار کرد و ناپدید شد شاه که از شدت وحشت دیگه چیزی نمیفهمید با ناباوری این ماجراها را تماشا میکرد اون حتی قادر نبود از این وقایه جلوگیری کنه چشاش سیاهی رفت و همه چیزی یهو در نظرش تیره و تار شد و حس کرد دست قوی اونو به طرف هوا میبره این اتفاق پایان کاری پری صحرا بود که با کتوله زرد اومده بود تا در روبودن شاهزاده خانم بهش کمک کنه اما خودش به شاه جوان معدن‌های طلا مند شده بود اون با خودش فکر کرده بود که اگه شاه رو از اونجا ببره و به یک سنگ زنجیر کنه ترس از مرگ سبب میشه که اون بلیسیما رو فراموش کنه و برده اون بشه به محض اینکه اونا به محل مورد نظر رسیدن اون بینایی شاه رو برگردون ولی به پاش زنجیر بست. بعد با قدرت خارق‌العاده‌ای که داشتش خودش رو به صورت یک پری زیبا و جوان درآورد و وانمود کرد که به طور اتفاقی در اونجا پیدا شده. اون رو به شاه کرد و فریاد زد: "چه می‌بینم شاهزاده عزیز این تو هستی؟ چه بلایی سرت اومده با این حال اینجا افتادی؟" شاه که گول ظاهر اونو خورده بود جواب داد آهی پری زیبا پیرزنی که مرو به اینجا آورد اول بیناییم رو گرفت البته از صداش فهمیدم که همون پری صحرا بود اما اینکه چه جوری من رو به اینجا آورده خودم هم نمیدونم پری به دروغ گفت وای اگه تو گیرم میافتادی دیگه تو رو رها نمی کرد مگه اینکه با اون ازدواج کنی اون تا حالا با جوانای زیاد این کار کرده. اصلا این تنها کاریه که به اون علاقه داره. همینطوری که اون داشت تظاهر میکرد که برای شاهزاده متاسفه یه شاهزاده متوجه شد که پری پاهاش شبیه پاهای شیره. و در همون لحظه فهمید که اون همون پری صحراه، چون پری صحرا تنها چیز رو که نمیتونست در خودش تغییر بده پاهاش بود. اگر چه میتونه صورتش رو به بهترین شکل ها و چهره ها تغییر بده. شاهزاده بدون اینکه کاری کنه که اون بفهمه، قضیه لو رفته، گفت من از پری صحرا بدم نمیاد، ولی واقعا نمیتونم کارهایی رو که اون برای کمک به کتوله زرد کرده تحمل کنم. اون منو مثل یک جنایتکار زنجیر کرد و به اینجا آورد، درسته که من عاشقه یه دختر زیبا بودم. اما اگه پری صحرا من آزاد میکرد، من حتما فقط به اون علاقه من میشدم. پری که کاملا گل خورده بود جواب داد، آیا واقعا این کار رو میکردی؟ شاه جواب داد، مطمئنن چرا باید دروغ بگم؟ بلاخره به یک پری علاقه من بودم، خیلی بهتر از اینه که آدم آشقه شاهزاده خانم معمولی باشه. پری صحرا، که حسابی تحت تاثیر این حرفها قرار گرفته بود فورا شاهزاده را به مکانی مناسب برد و بعد روی عرابه خودش نشوند که از پر درست شده بود و پرواز پروازکنان به هوا رفت اما وقتی شاهزاده از اون بالا دختر مورد علاقه شدید که در یک قلعه فولادی زندونیه احساس بدی پیدا کرد قلعه که دیوارهاش عشقهای خورشید رو اینقدر منعکس می که هر کسی به اون نزدیک میشد از گرمای اون خاکستر می شد راستاد خانم در بیشهزار قلعه کنار روی آبی نشسته بود و سرش رو روی دستاش گذاشته بود اما درست وقتی که شاه و پری صحرا از اون بالا رد می اون سرش رو بلند کرد و اونها رو دید اگرچه پری میدونست که زیباییش در چشم شاه به اندازه زیبایی شاهزاده خانم نیست اما دختر با دیدن اون صحنه با صدای بلندی گفت چطور شاه به این زودی با دیدن من منو فراموش کرده این رقیب کیه که زیباییش از زیبایی من بیشتر بوده وقتی که داشت این حرفا رو شاهزاده که هنوز واقعا اونو دوست داشت خیلی ناراحت شد و شروع کرد به گریه کردن اما خوب میدونست که پری صحرا قدرتمندتر از اونه که بتونه دستش فرار کنه پری صهراهم بلیسیما رو دید اما در اون لحظه سعی کرد تحثیر واقعی ملاقات اون و چشمهای شاه رو بفهمه شاه گفت میخواید بدونید از دیدن شاهزاده خانم چه احساسی دارم برای کسی مثل من که شما رو دوست داره دیگه این دختر بیچاره اهمیتی نداره البته قبول دارم که اگه من شما رو نداشتم شاید دیدن اون روی من یه کمی تاثیر میذاشت ولی ارزش شما خیلی بیشتر از اونه پری سر گفت آه شاهزاده جوان من واقعا باید باور کنم که تو اینقدر به من علاقه داری شاه جواب داد زمان همه چیز رو ثابت میکنه ولی اگه شما میخواید ثابت کنید که برای من اهمیت دارین خواهش میکنم به ولیسیما کمک کنیم پری سهر رو اخ میکرد و بعد شکل مشکوکی بهش نگاه کرد و گفت میدونی از من چی میخوایی؟ تو از من میخوای که هنرم رو ضد بهترین دوستم یعنی کتوله زرد به کار ببرم و این دختر خودقاه رو از اون بگیرم. پادشاه در جوابش چیزی نگفت یعنی اصلا نمیتونست حرف مشخصی بزنه. بالاخره اونها به یه چمنزار وسیعی رسیدن که گلایی رنگا رنگی تون رویده بود. رودخونه امیقی هم دورتادر اونو گرفته بود و پرنده های زیبایی در سایه درختاش آواز میخوندن. هوا خونک و تازه بود. راه باریکی چمنزار رو به قصری با شکوه می رسوند. دیوارهای قصر از زمورتهای شفاف بود. اوهایی که ارابر رو کشیدن به کناری رفتن و وارد یه راه روی شدن. اون راهرو با الماس سنگ فرش شده بود و سقفشم از یاغوت بود. هزاران موجود زیبا به دیدن اونا آمدن و با شادی این آواز رو می خوندن. وقتی عشق در قلبی حکم فرمایی میکند نزا در برابر آن بیفایده است این عشق سرکش است و دردی نیشدار دارد اما در عوض طعم پیروزی بزرگی را میچشاند پری صحرا از اینکه میشنید اونا درباره پیروزی اون حرف میزنن خوشحال بود اون شاه رو به یه اتاق باشکوه برد و چند لحظه تنهاش گذاشت تا فکر نکنه که زندانی شده. ولی شاه مطمئن بود که پری صحرا ازش زیاد دور نمیشه و جایی همون نزدیکی ها پنهون شده و اونو نگاه میکنه به همین خاطر جلوی آینه بزرگی که تو اتاق بود ایستاد و به آینه گفت: ای مشابه قابل اطمینان، به من بگو چه کار کنم که در نظر پری صحرا جذابتر باشم. آخه من هیچ فکری ندارم مگه اینکه اون منو بپسنده. بعد شروع کرد به مرتب کردن موهاش و کتی رو که روی میز کناری بود برداشت و پوشید. در همین موقع پری سهران برگشت و اونقدر خوشحال شد که نمیتونست خوشحالیش رو پنهون کنه. اون گفت من کاملا میفهمم که تو میخوای کاری کنی که در نظر من رضاب تر باشی. باید بهت بگم که موفق شدی. میبینی که آدم اگه واقعا بخواد کاری رو انجام بده خیلی هم سخت نیست. شاه که به دلایل خاصی میخواست اخلاق پری صحرا همینطوری خوب بمونه چیزی نگفت و کمی بعد رفت تا در کنار دریا قدم بزنه. پری صحرا با قدرت فوق‌العاده‌اش خودش رو تبدیل به بادی سهمگین کرد و بالای سر شاه به راه افتاد. به این ترتیب مطمئن می که اون به هیچ وجه نمیتونه فرار کنه. شاه هم با نراحتی به شرایط بد خودش و این اسیره این ظلم افتاده فکر میکرد. شاه بعد از اینکه که کلی قدم زد و بالا پایین رفت این شعرها رو, رو روی یک سنگ گندم کاری کردش. ممکن است بالاخره در این ساحل من هایم را با عشقهای گرم روشن کنم. آه آه هیچ راهی نمی عشق من غم و اندوه من هنوز برای توست و تا دریای طوفانی خشمگین که از حد تا با بادهای وحشی به حرکت در نیایی یگان عشق مرا از من دور کرده ای و من اسیر یک بند شده ام. قلب من از تو هم وحشی تر است زیرا سرنوشت با من ظالمانه رفتار کرد چرا من باید به اینجا تبعید شوم چرا شاهزاده من باید از من جدا شود آه هوری عزیز که در غارهای اقیانوسی هستی و میدانی که چقدر عشق من شیرین است بیا و این موجهای سرکش را آرام و این عاشق دور افتاده را آزاد کن همینطوری که اون داشت این چیزا را مینوشت صدای توجهش را جلب کرد. اون به اطرافش نگاه کرد و دید که مورت از حالت عادی بالاتر رفتن. بالای یک مورت زنی زیبا داشت به طرف اون میمد. زن موهای بلندی داشت که دورش ریخته شده بود. در دریه دستش آینه و در دست دیگرش سونه ای بود و به جای پا مثل ماهیات دوم داشت و با اون می کرد. شاه با دیدن این صحنه تعجب کرد و ایستاد اما زن جلو اومد و گفت من میدونم که تو برای از دست دادن دختر مورد علاقت و گیر افتادن در دست پری صحرا چقدر ناراحتی اگه بخوای میتونم کاری کنم که از دستش خلاص بشی ولی باید به مدت سی سال یا بیشتر به طور ویژه زندگی کنی شاه معدنای طلا نمیدونست باید به این پیشنهاد چه پاسخی بده. البته که خیلی دوست داشت از اونجا فرار کنه ولی می ترسید. اینم یکی از بازیهای های پری صحرا برای فریب دادنش باشه. بوری دریا که فکر اون رو خوند گفت تو می تونی به من اعتماد کنی من نمی خوام تو رو فریب بدم و از دست پری صحرا و کتوله زردم خیلی عصبانی هستم. و نمیخوام به اونا کمک کنم. مخصوصا از وقتی شاهزاده خانم بیچاره تو رو با اون همه لطف و زیبایی در اون حالت وحشت انگیز دیدم. خیلی دلم براش سوخت. حالا اگه به من اعتماد کنی کمکت میکنم تا فرار کنیم. شاه فریاد زد. من کاملا بهت اعتماد میکنم. هر کاری که بگی انجام میدم. ولی خواهش میکنم اگه شاهزاده خانم رو دیدی به من بگو که چه کار میکنه و حالش چطوره. بوری دریا گفت نباید وقت تلف کنی با من بیا تو رو به قلعه فولادی میبرم. ما در اینجا مجرستمه شبیه تو میگذاریم که حتی پری سهرام نفهمه که تو اینجا فرار کردی. بوری با گفتن این حرف خیلی زود مقداری از خاروخاشاک ساحل رو جمع کرد و سه بار در اونها دمید و گفت ای خار و خاشاک عزیز من به شما دستور میدم همینطور روی شنها بمونید تا پری صحرا بیاد و شما رو ببره در همون لحظه اون خار و خاشاک به شهل شاه در اومدن و شاه با تعجب داشت اونا رو نگاه میکرد مجسمه حتی کتی شبیه کت شاه به تن داشت ولی شاه مجبور بود رو عوض کنه و چیزهای دیگه ای بپوشه تا اگه اتفاقی افتاد و پری سه را پیداشت کرد احتمال شناختنش کمتر باشه بعد هوری دریا شاه رو برداشت و با شادی شناکنان رفتن هوری گفت حالا من وقت دارم که درباره خانم باحات حرف بزنم در عوض لطفی که پری سحر را به اون کرده کوتوله زد اونو مجبور کرده که پشت گربه اسپانیاییش سوار بشه ولی شاهزاده خانوم خیلی زود به دلیل ضعف و ترسش از حال رفته و تا وقتی که در بین دیوارهای قل فولادی برسن به هوش نیومد، در اون قصد دخترهایی بسیار زیبایی از طرف کتوله زرد از اون استقبال کردند. کتوله زردم خیلی به اون توجه میکرد. اونو در تختی از پارچه طلا که با های مرواری تزین شده بود خوابوندند. شاه حرف اونو قطع کرد و گفت آه اگه ولی سیما منو فراموش کنه و بخواد که باهاش ازدواج کنه من خیلی دلم میشکنه موری دریا جواب داد لازم نیست بترسی اون دختر به غیرست و به کسی دیگه ای فکر نمی کنه کوتوله نمیتونه اونو راضی کنه حتی نگاهی هم به اون بندازه شاه گفت خدا کنه همین طوری باشه که تو میگی موری دریا پاسخ داد خب دیگه چی باید بهت بگم؟ وقتی تو داشتی از بالای قلعه میگذشتی بلیسیما روی چوبی نشسته بود و تو رو با پری صحرا دید. پری صحراف که چهره خودش رو تغییر داده بود باعث شد که بلیسیما فکر کنه که اون از خودش زیباتره. حتما حد حت میزنی که اون چقدر نامید شده و با خودش فکر کرده که تو عاشق پری شدی. شاه فریاد زد شاهزاده خانم فکر کرده من عاشق شدم چه اشتباه مرگباری حالا باید چیکار کنم تا اون متوجه واقعیت بشه هوریه دریا لبخندی از روی مهربونی زد و گفت خودت خوب میدونی که وقتی دو نفر مثل شما واقعا به هم علاقه دارن لازم نیست که کس دیگه در مورد عشقشون اونها رو راهنمایی کنه همینطوری که اون داشت حرف میزد اونا به قلعه فولادی رسیدن. قسمت روبروی دریا تنها جایی بود که کتوله زرد اونو با دیوارهای سوزان مرگبار نپوشنده بود. بوری دریا گفت من که الان شاهزاد خانم کنار جویبار نشسته. همون جایی که خودتم دفعه قبل دیدی. تو دشمنهای زیادی داری و اگه بخوای به شاهزاده برسی، باید با اونها به بهترین بهتر این شمشیر رو همراه خودت ببری. اینطوری بهتر با خطر روبرو میشی و شاید بتونی اونا رو از سر راه برداری. فقط باید مراقب یه چیز باشی. این که شمشیر نباید از دستت بیفته. حالا من کنار اون سنگ منتظر میمونم. اگه به کمک من احتیاج داشتی، دریغ کنم چون مادر شاهزاده یعنی ملکه بهترین دوست منه وستم برای همین بود که من اومدم و تو رو نجات دادم. بعد شمشیری رو به شاه داد که از الماس یکبارچه ساخته شده بود و از خورشیدم درخشان تر بود. شاه نمیدونست که چطوری باید از اون تشکر کنه اما بهش گفت که ارزش این هدیه رو میدونه و هیچ وقت لطف و مهربونی اونو فراموش نمیکنه. و اما از اون طرف پری صحرا وقتی که متوجه شد شاه دیر کرده با چند نفر از خدمتکاراش به ساحل رفت و هدایاییم هم برای اون برد. سبدهایی پر از الماس، مروارید، مرجان، کهربا و چیزایی با ارزش دیگه. در بین اون هدایا حتی گل، میوه و پرنده‌های زیبایی هم بود. ولی وقتی که پری صحرا تندیسی رو که هوریه دریا ازشون ساخته بود دید خیلی وحشت کرد و فکر کرد که شاه روی شنها از حال رفته. با ترجم پریورهای وحشتناکی زد و خودش رو کنار تندیس شاه انداخت و آهو ناله کرد. اون تمام یازده خواهرش رو که اونا هم پری بودن صدا زد تا به کمک اون بیاند. اونا با دیدن تندیس گول خوردن. گوری دریا از باهوشترین اونها هم باهوشتر بود. تنها کاری که اونا تونسته بودن برای پری سهر را انجام بدن این بود که به اون کمک کنن تا بنای یاد بودی برای شاه تو همونجا بسازه. تو همون موقع که اونا داشتن وسایل با ارزش مثل کهربا، عقیق، مرمر، تلا و برونز جمع می تا بنای یاد بودی شاه هم مشغول تشکر از خوری دریا بود و از اون میخواست همونطور که قول داده همیشه کمکش کنه. بعد به طرف قلعه فولادی را افتاد. اون تند و سری را میرفت و اطرافش رو با احتیاط نگاه کرد. دلش میخواست زودتر به بلیسیما برسه. اما هنوز راه زیادی نرفته بود که چهار مرد عجیب غریب به طرفش اومدن. اگه کمک شمشیر نبود، مردا میتونستن تو یه لحظه اون رو با چنگالای خودشون تیکه تیکه کنن. شاه شمشیرش رو بالا برد و در چشمای اونا فرو کرد. مردا به زمین افتادن و دیگه نتونستن حرکت کنن. شاه با چند ضربه دیگه همه اونها رو از پا درآورد. آورد و تازه داشت به راه که شش اجدهها با پولک هایی سختتر از آهن جلوش ظاهر شدن. با اینکه رویارویی روی با اونا واقعا وحشتناک بود ولی شاه شامت خودش رو از دست نداد و با شمشیر فوق العادش اونها رو یکی پس از دیگری از پا آورد. دیگه خیالش راحت شده بود که از این پس مشکلات با موفقیت حل میشند. ولی ناگهان دید که 24 هوری زیبا و قشنگ جلوش ظاهر شدند. این مهورییا دست گلهایی در دست داشتن و راه رو با گل ها کرده بودند. اونا می گفتن ای شاه جوان کجا میری وظیفه ما محافظت از این محله. اگه بگذاریم تا از اینجا بگذری برای خودتو ما دردسر درست میشه، خواهش میکنیم اصرار نکن. آیا میخوای بیست چهار دختر رو که هیچ آزاری بهتون نرسوندن بکشی؟ شاه نمیدونست که چی بگه و چی کار کنه چون این برخلاف راه و رسم نجیب زادا بود که وقتی چند خانوم از اون میخوان کاری رو نکنه به حرف اونا گوش نده همینطور که در حالت تردید بود صدایی در گوشش گفت بزن و برو، بزن و برو وگرنه برای همیشه شاهزاد خانم را از دست میدید. بنابراین شاه بدون اینکه جواب خوری رو بده، رفت جلو، دست گلای اونا رو به طرف پرت کرد و بدون معطلی به سراغ شاهزاد خانم رفت که روی چوبی در کنار جویبار نشسته بود. دختر رنگ پریره و ضعیف شده بود. شاه به پاش افتاد و گریه کرد. اما دختر انگاری که اون کوتوله زرد رنگه اصلا بهش نگاه نکرد شاه فریاد زد آه شاسته خانم از دست من عصبانی نباش اجازه بده همه چیز رو برات توضیح بدم من برای این چیزایی که اتفاق افتاد مقصر نیستم من بدون اینکه خودم به و بتونم کاری انجام بدم باعث نگرانی تو شدم بلیسیما فریاد زد آه، فکر میکنی تو رو ندیدم که با اون دختر زیبا پرواز میکردی؟ آیا این هم برخلاف خواسته تو بود؟ شاه جواب داد بله، واقعا برخلاف میل من بود. اون پری سرایی بدجنس منو زنجیر کرد و سوار بر ارابش به اون سوی زمین ها برد. اگه کمک های یک هوریه دریایی مهربون نبود، من هنوزم اسیر دست اون بودم. اون حوری دریایی منو نجات داد تا پیش تو بیام لطفا با من همراه باش. با گفتن این حرفا اون خودش رو به پای شاهزاده خانم انداخت اما افسوس که با این کار شمشیر از دستش افتاد و کتوله زرد که در اون نزدیکی پنهان شده بود پرید اونو برداشت. کتوله خوب میدونست که این شمشیر قدرت خارق العاده ای داره. شاهزاده خانم با دیدن کوتوله فریاد وحشتناکی کشید ولی این کار اون حیولای کوچک رو تر کرد و اون با فریادی دوغول رو خبر کرد که اومدن و شاه رو زنجیر کردن کوتوله گفت حالا من مالک سرنوشت رقیبم هستم اما شاهزاده خانم اگه تو رضایت بدی که با من ازدواج کنی در عوض اونو آزاد میکنم و میذارم بره. شاه بیجاره فریاد زد اگه هزار بار بمیرم بهتر از این آزادیه. دختر فریاد زد افسوس تو میخوای بمیری این خیلی وحشتناکه. شاه جواب داد اینکه تو با این جادوگر مسخره ازدواج کنی وحشتناکتره. شاه ساده خانم به کتوله گفت پس هردو دوی ما رو شاه گفت بذار این افتخار نصیب من بشه که برای تو بمیرم. دختر رو به طرف کتوله کرد و فریاد زد. نه نه اونو نکش. من حاضرم هر کاری رو برای تو انجام بدم. شاه گفت ای دختر ظالم تو میخوایی با ازدواج با این کتوله زندگی برای من تیرو و تار کنیم؟ کتوله زرد جواب داد نه تو عروسی ما رو نمی‌بینی. و با گفتن این حرف در بین اشکا و ناله های دختر شمشیر الماس رو در قلب شاه فرو کرد. شاهزاده خانم بیچاره که دید عاشقش کنار پاش جوم میده دیگه نتونست بدون اون زندگی کنه بنابراین خودش رو به روی اون انداخ و از شدت دلشکستگی در همون لحظه مرد و به این ترتیب زندگی این دو عاشق پایان یافت. و حتی هوری دریایی هم نتونست کمکی به اونها کنه چون قدرت خارق العاده هم از دین رفته بود. کوتوله زرد با خودش فکر میکرد که بهتر شد که شاهزاده خانوم مرد و با شاه معدن طلا ازدواج نکرد. وقتی پری سهران از ماجرای شاه مدنهای تلا باخبر شد بنای بود رو خراب کرد و از اینکه گول خورده بود خیلی ناراحت شد و تمام عشق و علاقهش به نفرت تبدیل شد بوری مهربونم که از سرنوشت اون دو عاشق غمگین بود کاری کرد که اونها به دو درخت خرما تبدیل بشند تا همیشه در کنار هم باشند و داستانهای عشق پر رو در گوش هم نجوا کنند و یک دیگر رو با شاخه هاشون نوازش بدن امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشین و منتظر باشید تا داستان‌های بعدی خدا نگه دار. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سفر را زفر کنین؟ جایی که پریهاو کتوله ها زندگی میکنه کانال هزار افسان همونیه که دنبالشین جایی که داستان های افسانه ای و سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویا سفری به دنیای خیال و رویا